نام خداوند بی جمع مهربان نهایت با رشن آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آیا دسیسه ایشان را به اثر نسن؟ و ایشان پرندگان عبابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاه خورده شده گردانید